حرف غین از بالای حلق با نرمی تلفظ میشه خیلی نرم کلا آقا همیشه میگن غار غار با نرمی غا غا سر آپلیزی دان تو دان تو کنید آپلیزی دان تو کنید کنید غیره همه با هم آ غیره غیر الموضوب عليهم با هم غیر الموضوب عليهم غافر مغفرة